نام رو بدی میشه چی الاندوث یعنی درست شو اینجا هم احتمال داشته که چی باشه به معنای الا باشه هم احتمال داره به معنای الا هر دو اعتماد نشه بعضی جاها به معنای الا درسته بعضی جاها به معنای الا یعنی بعضی جاات ها اینکه بگذاریم معنا درسته بعضی جاها چی مگر نحو لا که او توتی الا دو مورد دیگر هست که ان بعدش در تبدیل یکی فاء سببیت یکم واو معیت فعل مزاره بعد از اینها در جواب چی طلب میشه منصوب در جواب طلب بنف المسبوقین به نفی در که این صفه سببیت و واو میت باشند یعنی جلاتر از اینها ذکر شده باشه نفی یا طلبی نفو زرنی فا اکرمک زرنی فا اکرمک زرنی فیلم فیل و فایل و یا مفعول و اکرمک منصوب به عنه یادتون باشه گفتیم با این فا اکرمک حرف به جا چی میشه فا ان اکرمک حرف به جا چی؟ آه. میشه لتکون زیارتون میشه به جای یک مستر جعلی از موقع مستر متسید از موقع این همین عبارت رو ترجمه رو عبارت میشه زرنی و کنم یک مثال دوم. لا تأکل از سمکه لا تأکل لام هم ساکنه نهی ها و تشربه ان لا تاکل از سمکه و این بابش باب چیه؟ مئیت و تشربه یعنی نخور ماهی را همراه بال نوشیدن بگم پیتی من از راست لا تاکل از سمکه و تشربه الان تشربه منصول به مقدره بعد از واب معیت در جواب حالا شما میتونید طلب و نفی رو در اینجا جا عوض کنید مثلا داشه ارز باشه تحزیز باشه فرقی نمی کن مثالاش ردیف به طور مثالهای متعدد در کتاب عوامل برای همش مثال داده نفی باید. بعد از حتی هم هم در و حتی به معنا اله او کرد حتی که به معنای اله باشه یا به معنای شایی یعنی اوریده به هر استقبالو البته به شده که بعد از اون حتی فعل مزارعی که هست ازش اراده چی شده باشه بگیم مستقبان شده باشه نوا اسیرو اسیرو یه چی؟ سیر میکنم الان یه نفر میگه الان دارم سیر میکنم اسیرو حتی تقربه از شمسو حتی تقربه از شمسو یعنی چی؟ یعنی سیر خواهم کرد تا این که دیگه نه؟ الا دیگه تا کهی سیر میکنه؟ الا انتق رو به تا اینکه غروب کنه؟ برشید یعنی تو موقعی که آفتاف هست من چیه به راه رفتن خودم؟ ادامه میدم. الا انتق رو بشنس. الان میگید اسیر و فعل و فاعل حتی, حتی حتی جاده انتق رو به فعل و فاعل و تعلیم به مستر میده میشه حتی غروب شنس. متندق است به اصلی من متقاصل حتی به معنای چی شد اعل یه مثال برای اادام رو نگاه کنید اصلا تو بگیید من الان مسلمان شدم اصلا تو حتی عد خلل جننه تا داخل هم به بهشت کی داخل چه به بهش در آینده دیگه اونجا کی تا کی ادامه میده تا در آینده غروب عوب استقبال ازش هستا حتی عد و خلال جنگه حتی فعل چیست؟ اسلم تو و فائل حتی حرف جد. بعدش که به مستردی میشه حتی دخونی الجنگه این حتی دخونی جارمشون مطلق با تو حتی عد و حالا این عرد حالا. اگر از فعل بعد از حتی اراده زمان حال بشه کانت حرف ابتدای اون حتی میشه حرف ابتدا و دیگه انی در تقدیر نیست چرا چون اگر زش اراده حال شده دیگه نمیتونیم ان بیاریم نمیشه که از فعلش اراده حال شده علامتی که بر سرش در میاریم علامت چی باشه؟ استقبال باشه اصلا امکان نداره پس فرین در حالت کانت حتی حرف ابتدا یعنی حرف استیناف بهش میگن مشخصه؟ بهش میگن حرف استیناف مثل اینکه یه نفر میگه سرتو سر تو حتی بلد سرتو حتی عد خلو عد اگه گم حتی عد خلو اینو باید که بگه؟ یعنی اینکه همه الان داره وارده میگه سر تو من از قبل را افتادم حتی از خلول بلد تا که الان وارده پس اگر ازش اراده حال شد و حتی ات خلول بلد رو زمان حال ازش اراده شد باید حتما چی کنه؟ محبور باید اگه گفتن چرا ان باید در تقدیر نباشد در اینجا میگیم چی؟ چون ان علامت استقباله و اگر از پیل اراده زمان حال شده اینجا تو با هم جمع نمیشه دوشو. ف این اراده تلهاله اگر اراده حال کردی از اون فرق کانت حتی حرف ابتدا حرف استیناف حتی شه حرف ابتدا حرف استیناف یعنی چه حتی حرف ابتدا و استیناف باشه؟ یعنی حتی حرفی است که جمله ما بعدش از نظر لفظی جدا از جمله ما که حرف ابتدا و حرف استیناف حرفی است که جمله ما بعدش از نظر لفظی به جمله ما قبل ارتباطی نه. یعنی جمله‌ای که ابتدا شروع شده استیناف تازه است سند پس برآمد این حرف ابتداو حرف استیناف یعنی چی یعنی اینکه جمله از نو شروع شده و ربطی به کلام قبل دیگه از نظر لفظی یعنی از نظر معنایی یا از هم معنا چرا؟ وقتون میگه سر تو حتی ات حت بلد یعنی سیر کردم در گذشته تا اینکه الان وارد شر بشه. با هم ارتباط داره؟ از بر معنا ولی از نظر نفذی این کلام به کلام قبل هیچگونه ارتباطی نداره حتیش حتی ارتباطیه و استینافی کجا یه حرف ابتدا از حرف استیناف از حرف جر نیست توی میگیم حرف ابتدا حرف استیناف اگر حرف جر باشه حتما چیکارش میکنه؟ نسب میده ان اونو تا اینکه تبدیل بشه به اسم و حتی جاره بر سر اسم دارن حتی چند قسمه؟ سه قسم یک حتی عاطفه دو حتی جاره این دوتا رو خونده بودید و یکم حتی استینافیه که امروز خوندید حتی استینافیه کدومه؟ اونی که ما بعدش جدای از ما قبله و هیچکونه ارتباط نفسی به هم و صلی اللہ و سی رب العالمين وصلى الله على محمد, و محمد, و محمد, و محمد.